سلام مثل همیشه من آرش هستم و اینجا هم رادیو جد بنفشه بچه سال مهربونه که سعی داره آدم خوبی باشه. آدمما که از اول بزرگین. اصلا نمیدونم چه سری هست توی این کلامی آدما که اتومات ذهننامی بر سمت موجود بزرگ. این اپیزود در مورد آدم بزرگا آدما، بچه ها خوبی و بدی مهربونی یا ناممهربونی نیست. این اپیزود راجب موجودتیه که کسی رو جدی نمیگیره. راجب کساییه که سالها در کنار آدمیزده هستند، ولی خیلی راحت میرن تو سطل زبانه بعضی وقتا هم بهشون احترام گذاشته میشه و میرن توی انبار و البته راجب موجوداتیه که آدمیزاد به خاطر آدمیزاد بودنش اونا را عروسک میرن این اپیزود تقدیم میشه به همبازی دوران بچگی خیلی از آدم بزرگ ها که خیلی راحت، عادی و ساده مشمول داشتن تاریخ انقضا شد تقدیم میشه به اولوز و عروسک سخنگوش، به لطیف و شطر بزرگش، به یا بهتر اینجوری بگم اینجا رادیو 18 بنفش بچه سال مهربونه که سعی داره موجود خوبی باشهولمو بده بالا کلاس دوم دبستان که بود، یه روز آقاش اومد خونه و گفت از امروز باید دارید سر چاره ازگاش بفرشید. باید خرج خودتو تو وگرنه و اگر تا از خونه بیرون. هم ترسید. آخه فقط هشت سالش بود. مادرش هم مثل آقاش معتاد بود. اون می آقاش از خونه به بیرون. نه اینکه که گم کنی خونشون یه قصد دلگشا باشه با یه باقی پر از میوه می خونه اونا تشکیل شده بود از یه چهار دیواری متری با یه لامپ زرد وسطش که اونم هر ثانیه پرپر میزد و اساب بادم و خرد میکرد. خونه اونا تو زاقه های اطراف یه شهر بزرگ بود جاهایی که خیلی ها تو خوابشون هم نیدند. خونه اونا دیوارش حتی گچ هم نداشت ولی همین خونهی آجوری پر از موش و تاریک و بیرنگ و لاب برای قلمالی که هشت سالش بود جایی بود که اگه ازش بیرونش میکردن ترس تمام وجودشو میگرفت. آخرای بهار بود. کارنامه‌شو گرفته بود. همه درساشم هم بیت شده بود. اون روز آقاش اومد و یک کیسه پر از اسکاج‌های سبز زمخت و انداخت جلوش. کیسه از خودش هم بزرگتر بود. آقاش گفت: تا «اگه نصفشون نفروخته باشی، خودت هم خونه نمیاد. غلامری رفت و از حجت که با برادرش توی یکی از خونه حلبیا زندگی میکردن، پرسید که باید کجا بره تا اینا رو بفروشه. حجت به سر بدی نبود. دستشو گرفت و برد و سوار واحد کرد. و گفت به آخر خط که رسیدی پیاده میشی و باز سوار فلا واحد میشی و سر اون چار جنساتو میفروشی غلامالی ترسیده بود نشت روی سندلی و از پنجره به بیرون نگاه کرد تک تک درخت تیر چراغ برقا، مغازه ها و خونه ها رو تو مخش ثبت کرد که مبادا شب راه برگشت و گم کن و به تو خیابان. کم کم همه چی داشت عوض میشد اون تا حالا گمون میکرد کل دنیا شبیه زاغه خودش. بیشتر بچه ها وقتی دنیا میان تا وقتی مثلا دوسه ساله میشن خاطره ای تو ذهنشون باقی نمیمونه. به قول بیبی خانوم خدا نمیخواد که خاطرهای از اون ها تو کلهشون بمونه. بیبی خانوم میگه اون زمان بچه ها خدا رو میبینن، فرشته ها رو میبینن، جن و پریارو رو میبینن. حتی آدم آدما رو همونطور که ذات اصلیشون میبینن. برای همین خدا هم ذهنشونو تا قبل 2 سالگی پاک میکنه. که هم خودشو فرشتههاش فرشته هاش لونرن همون بچه خلوچلا دیوونه نشه بعد اونم البته زیاد خاطره یادشون نمیمونه دیگه باید چقدر اون خاطره سنگین باشه که به چسب رو دیوار مخ بچه و پاک نشه ولی اصولا همه بچه ها یه عروسک یه, یه اسباب بازی محبوب دارن که تا آخر عمرشون تو ذهنشون هست حتما هم نباید اون اسباب بازی عروسک و ماشین و اینجور چیزا باشه من یکی میشناسم که این شیء محبوب بچگیش یه پتوی پلنگ نشانه که هنوزم که هنوزه تو سن 47 سالگی اون پتو رو از خودش جدا نمیکنه البته نه به خاطر اون پتوه ها به خاطر پلنگ روش اون پلنگه اولین رفیق اون آقا بوده توی تنهایی و غربت میون این همه صلوت من رو تو بودم توی این اتاق خلبت با تموم بی کسی هم با همه دل بستگی تا توی شب برام نرشتی که میریم از دل چشما وقت در سالگی ای تو رو نگات می کردم با زبون بیصاپی هی تو رو صدات می کردم <موسیقی> اما؟ دوباره یه کمی نگام میکردی من ساده فکر میکردم دوباره به هم خندی بعد پنج سال قبل دوری اومدی یه باش سراغم منو تو کمان گذاشتی دو دل سیاهی و غم حالا چهل ساله که اینجام خیلی خسته خیلی تنها لباسام یه کم چروکه پر خاک تو نفس یه, یه نوری اومد من لایه در یاششیوا شد صورت یه بچه بودو مثل فیلم وقصه ها شد. من آهسته بقل کرد توی دستای ظریفش انگاری بود همه دنیا توی آقوش لطیفش یه صدای آشنایی توی نور نصف نیمه می گفت ای وای این عروسک مال وقت بچگی کم کم همه جا داشت پر از رنگ و نور میشد. خونه های مرمری، مغازه های پر از عطر و بوی غذا لباس های رنگ و وارنگ. اون همیشه ها میکرد تمام مادر پدرای دنیا همینجوری شبیه مادرپدر پدر خودشو باقی همزاقه تا شب وقت برگشت، همون زمانی که حجت بهش گفته بود حتما باید برگرده وگرنه اتوبوس تموم میشن، محفل تماشای دنیای تازه‌ای بود که پاک حواسشو از خودش و آقاشو اسکاچاش پرت کرده بود. فقط 6 تا فروخته بود. پولاش شمرد، بیری که حجت به اش داده بود و دستش گرفت و باز سوار واحد شد تا برگرده خونه. چند ساعت بعد تو تاریکی وقتی رسید دم در خونه، آقای معتادش گرد کنه پاره چرمونیشو انداخته بود رودوشش و دم در منتظر اون واسطاده بود. کیسه رو زمین گذاشت و با آقاش نگاه کرد. دست کرد تو جیبش اون چند چنتومانی که درآورده بودو داد به آقاش. آقاش سیگارشو کف دست کوچیک اون خاموش کرد. واس چه بخاین اون اصلا دردش نمیواد. چون تو فکر اون همه نور و قشنگی بود که اون روز دیده بود. فردا صبح زود زد بیرون از خونه میخواست باقی اون شهر رو ببینه شهری که اسمش تو شناستماش خورده بود ولی ازش فقط همون یه زاقه و همون یه اسم سهم قولعملی شده. سه سال گذشت و الان دیگه همه جای شهر رو یاد گرفته بود. کلی اسگاهچ و دستمال و گل و سیگار میکروخت. یه شب اوقایر تابستون وقتی که اومد خونه دید که دیگه خونه ای نمونده، بوی گوشت کبابی همه جا رو گرفته بود دید که دوتا بران اومد خونه بیرون. آقاش خونه رو آتیش زده خودشو، مادرشو. دیگه نه پدری بود نه مادری و نه حتی ای. چند وقت تو خاکسترهای پدر و مادرش بود ولی یه روز تصمیم گرفت دیگه بر نگرده کل شهر رو گشت تا یک کار و جای خواب پیدا کنه کسی به اون کار نمیداد آخه فقط یه شناسنامه سوخته داشت و یه کیسه اسکاچ و یه دست لباس که حالا خیلیامور گرفته از همه مهمتر سن کمش و بی سواد بودنش بود یه مدت زیادی رو توی خرابه میخوابید کنار آدمای موتادی که بوی باباشو میده. بچه ها وقتی آدم بزرگ میشن بیشتریاشون عروسکه رو یادشون میره به خاطر جبر نیست بلکه خودشون میخوان در بیشتر مواقع یعنی البته اصن فکر نمیکنم به اینکه میخوان فراموش کنن یا نه یه جورای انگار باید فراموش اون عروسکه یه قانون نانوشته است اتومات زمانش تموم میشه و میره پیکارش کارش عروسکا موجودات مهمین البته نه برای همه بچه ها. بین همون بچه هم یه سریا هستن که کلاً از همون بچگی تفکرات آدم بزرگونه دارن. بعضیام هستن که اونقدر دور برشون پر از آدم میزاده دیگه که عروسک از همون اول فقط حکم یک شیر رو داره براشون. ولی برای بعضی از اون بچه ها عروسک تنها سرمایه و تنها رفیق و تنها هم بازی‌شونه. یک روز که داشت از یک خیابون میگزاشه کارگاه عروسک سازی دید. روی در نوشته بودن به یک کارگر ساده نیازمندی. صاحب کارگاه یک خانم بداخلاق بود. بعد از اینکه غلامالی داستانش براش ترید کرد، خانم بدخلاق اجدادات اونجا بمونه. شب اونجا بخوابه و یه جوری بشه پادوی اون کارگاه عروسک سازی. تا روز قلمعلی عروسکی رو اینقدر از نزدیک ن بود. این عروسک ها حس جدیدی رو در اون زنده زندگیشان، یه حس غریب، شکل ای از بچگی که چند سال پیش و خیلی زود ازش گرفته شده بود. شب که همه میرفتن با فکر جسدهای سوخته پدر و مادرش و تنهایی‌اش تنها می می‌شد. توی اون زمانا تناکاری که ازش برمیومد گریه کردن بود. چند ماه گذشت و غلامعلی ساکت اونجا مونده شد. صاحب کارگاه شوا درو به روش می می‌کرد و می‌رفت. شاید می‌ترسید غلامعلی یه شب کل کارگاهو بار کنه و بره. غلامعلی اون شب هم داشت گریه میکرد. یه تصمیم خیلی واقعی گرفته بود. حتی یه تنابم برای خودش جور کرده بود. یه حلقه چنگکی روی سقف کارگاه بود. رفت که تنابو بیاره. از صبح چش میکشید که همه میرن و اون با تنا اون چنگک و چهارپایه تنها میشه ولی یهو روی زمین یه سر کوچولوی عروسک دید. جالب بود چون همه جا رو جارو زده بود اجازه نداشت دست به وسایل کارگاه بزنه اون فقط با تمیز میکرد که های پشم شیشه و پنبه ها و پارچه ها و قطعات عروسک ها رو جابجا میکرد ولی اون شب لبخند عروسک نذاشت که اون سر و گردونه توی سبد قطعات لبهای عروسک جوری به قلم لبخند میزدن که پاک یاداشت قرار بود اون شب چیکار کنه مثل گرگ گورسته‌ای که حتی که غذا پیدا کرده باشه و بترسه کسی ازش بگیره سر عروسکو کرد زیر بلوزش و اتاق اتاقه کوچیک زیر پله که مال اون بود از یه گوشه اتاق کیسه وسایل آورد فقط یه اسکاچ براش مونده بود با نخ و سوزن و قیچی تو سوب رفت تا صبح برای عروسکش یه بعدم بساز اسم عروسک شد قلام اسکاچی. مثل یه گنج و یا یه کالای ممنوع از قلم مراقبت میکن. شاید باورتون نشه ولی کم کم قلامسکاجی شروع کرد به حرف زدن باهاش اون بروسکش هر پایی رو زد که مدتها بود توی دلش مونده بودن و هیچ کسا نداشت که براشون اونا رو تعریف کنه آخه میدونین دردا که تو دل بمونن بو میگیرن کپک میزنن میترشن دونی شدی کجای میتونن هر چیزی باشن همون پتوه که روش پلنگ داشت یا حتی یه مداد عروسک ها موجودات قابل اعتمادی هستند که از یه جای زندگی یه بچه همراهش میشن بعضی از این بچه ها اصولا هیچ دوست و حامی ندارن که به اونا گوش بده و عملا این بچه ها چیزی نمیخوان جز کمی توجه توجهی که باعث میشه افکار منفی و ترس هاشون بیرون برزه و جوونه امید آرزوی درونشون دفت نشه برای بعضی از این بچه های تنها این نقش توسط موجود سامت و بی حرکتی بازی میشه توسط یه عروسک اون عروسک تبدیل میشه به اولین و تنها رفیق و حامی اون بچه منی که با تو من شدم بی تو پرم از بی کسی بلخزه های زندگی اگه بدادم نرسی آینه با چشمای من همین آینه روم به روم روزی هزار بار میشکنه. یه مرسی تو دست شب وقتی دم است تو, تو مثل اون ارو که ساختنت بدون لب یه مرسی تو دست شب وقتی دم است تو, تو مثل اون ارو که ساختنت بدون لب که ساختنت بدون لب قلم اسکاچی صبورانه به حرفهای رفیقش گوش میداد و لبخند میزد. برای غلام هم همون یه لبخند کافی بود برای اینکه آروم بخوابه و به چیزای خوبی فکر کنه که زیر ترس از مرگ و تنهایی دفن شده بود. یکی از اون فکرها درس خوندم. اون الان دوازده سالش بود ولی فقط تا کلاس دوم سواد داشت. قلم اسکاچی اون شب که رفیقش بهش از درس خوندن گفته بود، یه لبخند طولانی بهش زده بود و همین کافی بود برای اینکه فردا بره و به صاحب کارگاه بگه که میخواد درس بخونه. خانم بدخلق اولش داده و بداد انداخت و گفت که قلامعلی یه بچه بوگندوی کارتون خواب بوده که اون بهش جا و مکان و کار داده و حالا روش زیاد شده. قلامعلی خیلی عصبانی شد، حتی میخواست از اونجا بره. ولی وقتی به قلام گفت لبخندی نری. همین کافی بود که بشینه تو آبدارخونه و هیچ جا نره. بعد چند ساعت خانم بدخلق اومد بهش گفت فردا آماده باشه که ببرندش و معرفیش کنم به این مرکز شوانویسی. قلامعلی توی اون لحظه خودش خوشبخت‌ترین موجود روی زمین می‌دونست. این برای اولین بار بود که غلامعلی برای خودش تخت داشت. سر وقت قضا می‌خورد. تنها کاری که ازش درس خوندن بود. اونجا یه مرکز خیریه بود. همه بعض مالیشون بد بود، ولی غلامعلی از خودش گذشته چی نمی‌گفت. توی اونجا هم غلام قایم میکرد. غلام از غلامعلی پر از ترس و استرس و کم که صحنه جسدای سوخته پدر و مادرش و دردها و عقداش از توی سرش بیرون نمیرفت یه پسر درس‌خون و مؤدب و حاضر جواب و دوست داشتنی ساخته بود. قلام تونست توی دو سال اون چهار سال عقب افتادگیش جبران کنه. غلام اسکاچی کاری کرد که اون کنار درس خوندنش بره اون نجاری هم یاد بکره. تو خوابگاه هم به صورت تمام وقت توی آشپزخونه کمک کنه. همین شد که مدیر اونجا اجازه داد تا زمانی که قلام کنکور بده توی مرکز بمونه. تابستون بود، صبح بود. غلامعلی دست کرد توی متکاش و قلام اسکاچی رو درآورد. بدون لب زدن و اینکه صدای ازش درات گفت برام دوها که قرامسکاجی لبخند زد و همون لبخند کافی بود تا رفیقش با تمام وجود موفقیت رو حس کند. اما یه دوزده عروسک ها رو یادتونه من یکی میشناسم که هنوز که هنوزه بعد 20 سال از این فیلم میترسه. ازش که بپرسی دلیل ترسه شو میگه چون اون زمان میترسیدم تنها رفیقم که یک عروسک بود و به و رو ببرم. یا سال گذشت و همین موجوده بی ارزش روح و جسم اون پسره که تنها رو از زوال نجات داد. شاید لبخند اون عروسک فقط یادآور آرزوها و خواسته های بود به خودش. هرچی بود هیچ کس رازش نفهمید، هیچ کس نفهمید. دکتر روانشناسی که همه برای وقت گرفتن از اون صف میکشن، دستفروش بی سواد و زاده زاغی بود که توی خوابگاه های خیریه بزرگ شد و از ترس شبها نشسته میخوابید. هیچ کس هیچ وقت نفهمید که اون عروسکی که آقای دکتر توی اون روش شیشه مثل چشمش ازش مراقبت میکنه یه شب گرم تابستون آقای دکتر اونارو به دنیا آورده اولو اسکاچی حالا 36 سالشه و دیگه خسته تر از اونه که همش قایمشه حالا سالهاست که دو تا قصه ما فقط به هم لبخند میزنن و همین کاپیه برای اینکه هر دوشون یادشون بیاد که چجوری آرزوهای همو زنده کرد حسکو چهای خوب، آرزو ساک من بود. چشای یخ زده شنگار، تلوی سپر آشن بود. آرزو ساک جسم بیجونه، ولی حالو هوا داره. برای این سکوت ساک یه دنیای سدزده. اصلا میدونین چیه؟ شاید یه سری موجودات غیر زمینی هستن که برای خودشون دلایلی دارن. دلایلی که باعث میشه اونا با زمینیا مشکل داشته باشن. این موجودات برای اینکه آدما رو هرچه چه سریعتر از بین ببرن، اونا رو وارد مرحله آدم بزرگ بودن میکنن. اصلا فقط یه فراز زمینی میتونه آدمها رو اینقدر دوست بزرگ شدن بکنه. بزرگ شدن بد نیست. بزرگ شدن همراه با از دست دادن شادی و وارد وادی حنجارها و بی‌محبتی‌ها شدن شده. اولین قربانی همین چون اونها تنها کسایین که یاد آدمو میارن که یه زمانی چقدر بی‌دلیل خوب و مهربون بودن. اینجا رادیو هجده بنفشی بود که حتی اگر بزرگ هم بشه، سعی می‌کنه مهربون بمونه و هیچ وقت فراموش نکنه کسایی رو که باهاش رفیق بودن و بهش مهربونی کردن، حتی اگر اون فرد یه حرسک بشه. کانال تلگرام ما هست رادیو هجده بنفش هجده عددی ما رو از طریق این کانال و البته از طریق تارنمای بیتون و بخش پادکست‌های این تارنما تو اموال کنی دیدم که شب چشما تو ترسنده عروسه اسمی خونه اگه حال برات منم تو چشم مسی شیشه که شب چشما تو ترسنده من از جنس زمین و خاک تو اما زاده ترمه تن من سرد یخ بسته تو نه تو ساده و گرمم تو یاره خود های نگاه پاک و گهواره همیشه با تو میخواستم برام توجا فاورا عروسه اسم می خونم اگه راحت مونده تو چشمه شیشه‌ای دیدم که شب چشمه تو ترس مونده عروسه اگه حال برات مونده تو چشمه شیشه‌ای دیدم که شب چشمه تو ترس مونده منم همبورس یه دیرو کتاب قسم دادرنگی پره گنجش که بیچاره غروره تیر کمون سنگی به چشمه بی نگاه تو شب و صبح ها سهر پاکه هنوز دستای کوچیکت از اشکان بیسونم ناکه یه حالی برآت مونده تو چشمشی شیت دیدم که شاب چشماتو ترسونده آرزو سر اس ت می‌خونه اگه حالی برآت می‌ده تو چشمشی می شیت دیدم که شاب چشماتو ترسونده آرزو سر اس ت می‌خونه اگه حالی Hallo Sunnde, du tschasch mich nicht